روز بخیر و و چکرم بخشی رو که ما هم مشتاق هستیم به سرعت بهش بفردازیم علاقمندوان بیشماری و بینندگان عزیزی ما میشن تا از مباحث کارشناسی مهمان عزیز و گرانسنگمون بهره ببرند حضور حکیم دانشمند استاد محترم جناب حاج آقای زیایی هست از سادات بزرگواری که طب سنتی و طب گیاهی و اسلامی رو با شیوه های سیار بسیار ایدئال و مطلوبی اطلاعاتشون رو در اختیار ما و شما قرار میدن عرض سلام دارم روز بخير خیلی, خیلی خوش هماری تجایزی هایی خدمت شما بزرگوارا و مجمعی که زحمت میکشم سلام اعزم کنم خدمت مردم بزرگوارم سلام اعزم کنم در خدمت خیلی متشکرم چهار هزار پیامک همینک پیش روی من هست چهار هزار پرسش مطرح شده و خوب مطالعه هست دیگه نمیتونیم به همه اینها در یک وعده برسیم انشالله به مرور فرموشات شما رو حاجا پاسخ خواهند داد هفته گذشته در خصوص کمخونی کیسه تخمدان تقویت حافظ دیابت و بسیاری از بیماری هایی که مرتبط با معده هست و پرسش های متعددی رو مطرح کردن من تصور میکنم که در ابتدا موضوع کیسه تخمدان خانم ها رو هم. ده. مطالبی رو فرموده بودید که میباید ارائه بشه بسم الله الرحمن الرحیم خارجی ها حتی انگلیسی ها امریکایی ها داخلی هاریسون رمانندو انگلیسی هم پنج و جلد کتاب دارن انجوان پزشکی بریتانیا راهنمای خانواده من کل اینو حاشیه زدم از جمله صفحه سی و پنجش رو حاشیه زدم در حالت با کیست تختان کسایی که کیست تخمدان دارن اول یه سری چیزا که برایشون بده باید تر کنن دختر خانوما یا حضرت خانوما چربی با ترانس بالا نخورن مثل خامه سرشیر که خامه‌ای رولت تعدیک سرخ کردنی تفت دادن روغن جامد ترانس چربی بالا نخورن بهترین روغن برایشون روغن زیتونه یک قاشق با یک قاشق باشه دوم چیزی که براشون بده اسانس‌های شیمیایی 70 نوع 20 تا بیماری میاره اینا رو نخورن مثلا نوشابه‌های گازدار آبمیوه‌های شیمیایی دلست نوشمک یخمک و سنکیف از این چیزا نخورن سوم کافئین زیاد چای پررنگ چای مونده قهوه شکلات، کاکائو نسکافه اینها هم کیست میاره هم لجن صفراوی میاره هم اگر قرص ضد حاملیگی هم خورده باشن سنگ های پیگمانتی قهوهی سفرا هم میاد این بالاشون خوب نیست چهارم اگر اضافه وزن دارن یا پرخوری دارن یا بدخوری دارن اینها رو درمان کن زیر نظر متخصص پنجام اینا هم گفتم پرخوری کم تحرکی نداشته باشه خود کم تحرکی چند بدی میاره یکی کیست میاره که تجمع پروتئین در مفصل میاره مخصوصا مفصل زانو کسایی که پرخور باشن و کم تحرک این دو ابتلا رو میگیرن در طول زمان یکی دیگه از چیزایی که باشون بدی فستفود فودها و غذاهای صنعتی سوسیس، کالباس، همبرگر اینا که مد شده اینها در طول زمان کیست تختان هم میاره عوارض زیاد داره یکیش هم اینه حالا چه چیزایی براشون خوبه باز اینجا حاشیه زدیم کیست تختان یعنی آماس بافت نرم حفره لگن در خانوما و دختران اینه بهش میگن آب آب اردگی بافت نرم حفره لگن زن حتی تو کتابای خوبی هم که هست مثلا اینجا حاشیه زدیم کتاب فرهنگ پزشکی دکتر محمد صادق رچحان هشتاد خوردهی سالش از پزشکای خوب شیعه اصناعشری و چند تا پسارش هم دکتر تهران. او تهران. اولین کتاب بافشناسی انسانی و اولین کتاب داعت المعارف بافت انسانی نوشته ایشون تو ایران. حالا در آخر صفحه 162 قسمت دست راستش همین جمله که توضیح دادم از ایشونه. درمانهای مختلف طبیعی یک مصرف گل استخدوسی یک قاشر چای خوری. پودرش تو استکان میزن روش آبجوش میزن هم میزنن این صبح میخورن قبل اینکه برن سر کار دوم خوردن هفت برگ کاسنی یا یک قاشق مربو خوری. پودر کاسنی یا یک استکان عرق کاسنی بدون اوسانس سوم یک حجامت خاص هست حجامت خاص پیش حجام زن برن مشهد هست هم یه دکتر زن هست قاسم آباد که تو ایران معروفه هم یکی از توی خیابون بحار مشهد با آقای دکتر سید احمد ساقبی کار میکنه متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی و رئیس دانشکده تب سنتی مشهد کنان چند این ساله بازنشست شده خب بگم خضرت خانم پیش خانم میره واسه حجامت حالا حجامت خاص. روز شنبه از دوتاران وسط ران روز دوشنبه یک روز درمیان باز بالاتر از وسط ران. روز پنج شنبه از مهره آخر کمری فقط یک بار این حجامت انجام میدن دیگه تکرار نمیشه اما کاسنی رو میخورن تا وقتی که کیست تختان مهر بشه و اگر از باب تنظیم خانواده خواستن اولاد دار بشن هر وقت جواب و آزمایشون مثبت اومد دیگه لازم نیست بعضی کتاب های قدیم و جدیدم دیدم، دیرم مثلا میان اصل و قاطیه با آبلیم و ترش تازه میکنن این رو هم در درمان کیست تختان بعضی هاشون بیان کرد این از نظر طبگی های اینا. بعضی افراد چون کیست های تختان متعدده گایی کیست های فولیکولر هست گایی کیست های کوچیک چندتایی هست گایی کیست کورپکس لعون هست که کیست جسم زرد میگیم که تو راهنمای راه گام به گام خانواده هم اون جمع اومده حتی بعضی خانم دکتر مثل خانم دکتر نفیس دوری استفت هم تو کتابش آورده صفحه 532 او کیست جسم زرد 5 الا 8 سانتی متر رشد می‌کنه. بله. در خصوص اپتیک آتروفی و دیابت هم پرسش‌هایی مطرح کرده بله بله. سپاسگزارم اگر اینا مدل‌های دیگهشم هست که سندرم تخمدان پلی که پو پی سی اوه یا داروهای مختلفش حالا. متشکرم. اینایی ای که قند دارن و قند نوسانیه و پایین نمیاد، غالباً خونریزی پشت کره چشم دارن. وقت یکی از عوارض دیابت هم چون یوگوست مزمنه و طرف زور اضافی میزنه تو مسائلی که میره اجابت مزاج اینا خونریزی ریزی پشت چشمشون شاید میشه تو پزشکی دو راه درمان گذاشتم یکی با لیزره یکی دو جلسه میرن شما تخصص چشم یکی هم آمپولای خاصی از که متخصصین داخلی ما مثل دکتر سیگارودی و همکاراش تو اسفان کشف کردن و بعد خارجی از ما یاد گرفتن و تو سایت گوگل و مانند او هست در بیمارستان های فوق تخصصی چشم مثل بیمارستان نور در تهران دکتر صادقی ما یا در مشهد بیمارستان خاتم الانبیا فوق تخصصی چشم چارو ابو طالب دکتر نقی موسوی فوق تخصص شبکیه دکتر خاکشور فوق تخصص قرنیه پزشک عادی ممنوعه که تزریق کنه این آمپول خاص رو یک چند میلیگرم روی چشم رو بیحس میکنن. کل عمل یک دقیقه است برای از پشت مردمک این ماده رو تذریخ میکنم پشت مردم. به یک ماه این لخته خون که تشکیل شده بوده و خون ریزی که تشکیل شده بوده قسمت شرکی پشت کوره چشم این حل میکنه بسیار رقیق میکنه تو به خاصیت اسموزی یا موینگی جذب سلولی میشه وارد گردش خون میشه چشم طرف خوب میشه حتی بعضی از گچکورای خیلی معروف آسان قدس رزبی دوبار همین آن پول دهنه مشالله چشمش شد. معمولا اتبای محترم به افرادی که دیابت دارن توصیه میکنن که مواد قندی مواد بله. بله. دار رو استفاده نکنه بله بله. حالا اینا شاکی هستن که وقتی ما یک مواد مغزی استفاده نمی کنیم دوچار زعف و دیحالی میشیم چه بله. چی چیزهای رو باید جایگزینش بکنیم؟ بله. قندهای شیمیایی برای افراد دیابتی چه نوعه چه نوع دو برایشون سمه قان شیکرش نجات قنادی و آبنبات این چیزا دوم اسانسهای شیمیایی براشون سم سوم ترانس چربی بالا که قبل توضیح دادم براشون سم چرا چون حالت این به صورت ذخیره چربی در میاد در بدن بعد وقتی یک کم گرسنه میشه این چربی ذخیره تجزیه میشه تبدیل به آب به اضافه گلوکوز میشه و چون اینها پانکراسشون ترش و کمه قند خونش میره بالا تو بحث معادله معکوس به نوع واکنش های حالا اینها باید قنده طبیعی که قندش کمه مثلا خشک، کشمش مویز برگ زردالوم انناب انجیر مثلا این طبیعی. طبیع حالا آبجوش بلرم یا آبشو در کلویس چه هستد از اینا میخواه اگر قنده خونش بالای دیویس نیست تو بیشتر ساعت سه عدد میتونه خورما بخوره. بیشتر نه. چون در هر صد گرم خورما بینه 47 تا 50 میلی گرم. در بعضی خورما ها بینه 65 تا 70 میلی گرم قند ساکاروز و همچنین قند گلوکوز داره. قند فروکتوزش خیلی کم. نظر اگر قندشون تا 200 ستا خورما تو 24 ساعت بیشتر نخورد. بالای دیویس تا سی دو دوتا بیشتر نخورن بالای 300 یکی بیشتر نخورن به خاطر اینکه ضعف ازولانی نگیرن و افت شدید قرن نگیرن چون وقتی قرص گلانین یا آمپول تزریقی انسولین میزنن دوچار ضعف میشن تزا خود متخصصین قدرت و فوق تخصص قدرت، و متخصصین هرمون و متخصصین متابولیسم چار داشت. اینا میگن وقتی که انسولین هم زد بعدش یه کفته از نون خوش بخوره یه نون سخاری ما مانند اینها تا دوچار زعف نشه به خاطر کارش قند به یک باره پس قند طبیعی جای گذین کنن به مقدار لازم نه زیاده روی متشکرم. اما اه... درمان های طبیعی هم حاجقا هست بله. مثلا خورشت بامیه. بامیه هم ملین مزاجه هم 15 واحد قنده کم میکنه. هفته ای سه با نهارها خورشت بامیه بخواهد. کسانی که انسولین میزنن اگر بخوان از انسولین تزریقی بینیاز بشن و پونزه واحدم هم قندشون بیاد پایین. سبزی خرفه تو روایات شیه میفرماید بقلت زهره، بقلت المبارکه، بقلت لینه. هم ملینه مزاجه، هم پونزه واحد قنده میاره پایین، هم وابستگی مریض رو به انسولین تزریقی عبه میبره. بسیار عالی بسیار. این همسی دکترای محترم خوبه بسیار عالی این مریضای اینقدر آمپول نخورن چون در طول زمان قلزت خونشون بالا میره بله. بعد برای که رک پیدا کنن هاچه چند جگاه بدنشون سلاخ سلاخ میشه که بخوان رک پیدا کنن خیلی متشکرم چیزای دیگر هم هست خیلی متشکرم اجازه می فرمید خیلی زور برمیگرد در محضر حکیم و استاد علی قد جناب حاجا قای زیایی عزیز هستیم از خدمت یکایک بینندگانمون پوزش میخوام، خیلی عذر میخوام که نمیتونیم همه پرسی‌ها رو در چند رحله مطرح بکنیم ارسیدم 4000 پیامک به دست ما رسیده باز هم تقاضا میکنم فقط از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه 3625 با ما در تماس باشید تلفن سازمان رو داغوتون هستیم اشغال نکنید و اما حاجا قای زیایی عزیز و بزرگوار راجب دیابت بیماری قند صحبت میکردید و داروهای گیاهی جایگزین انسولین. بله همچنین اینا البته داروهای شیمیایی شون رو نباید به یکبار قطع کنن. باید کم کم در طول چندین هفته دوز دارو کم کم کم کنن بعد میتونن جایگزین دارو گیاهی کنن. یکی دیگه از داروهای گیاهی مفید داروی مرکبه از آلو بخارا، آلوچه، انناب، تمهندی بی نمک از هر کدوم نیم کیلو در دو کیلو آب، دو کیلو آب، دو کیلو آب، دو کیلو آب، دو و آب بخستنم بعد جدا میکنن تو مخلوط کن، همزن، هم میزنن تو ظرفای پیرکس به چینی دردار جامعی و یخچال نگه میدارن. شخص دیابتی هر روز اینو هم میزنه. یه استقان از این مخلوط صبح میخوره. یه استقان شب. پس یه بار دیگه بفهمید. آلوچه آلو چه؟ آلوی بخارا؟ آفرین. انار انا تمرهندی بینمک. بعد که این هم زدن تو آب خسوندن. هم زدن حساش جدا کردن. تو زلفای چینی دردار یا پیرکس تو جامی بی یخچال نگهداری کن. هر کدامشون مجازه با 2 کیلو آب. بله. بعد اینا رو همه رو قاطی کردیم تو مخلوط کن هم زن. هر چهار اون سر احسن بعد اینا توی این زلف چینی یا پیرکس نگهداری میگم تو پلاستیک نیست. تو چینی یا پیرکس نگهداری میگم تو جامی بی یخچال. هر روز شخص دیابتی یه همش میزنه چون وزن مخصوص اینا زیاد میره پایین آب. یه استکان صبح می‌خوره، یه استکان شب. چه حال فایده داره؟ یبوست مزمنش خوب میشه. قلزت خونش خوب میشه. دیگه لازمه اسا آسپرین بچه هر شب یک دونه بخوره هشتاد میلی سوم گردش خونش ضعیف نمیشه که زخمای قانقاری یا از زانو به پایین بگیره، به زخمای عفونی و یکی از عوارض دیابت. چه بره با ساولان یک روز درمیان شسته شو بده این بند و بسات تا دیگه لازم نیست چهارم اینکه که قند خون 15 واحد میاره پایین پس ملیل مزاج قلزت خون رو میبره و میکنه 15 واحد قند خونه میاره پایین گردش خون در اندام تحتانی بدن رو سریع تر میکنه نمیذاره حرکتش کن بشه و ایجاد لخته و پوسیدگی باف و ایجاد زخم قانقاریه بشه. یکی دیگر داروهایی که خیلی آسونه و نمیخواد بخورن قابل عرض بزرگوارایی که دیابتشون بالاست و نوسانی هندوانه ابوجه یا خربوزه معاویه هندوانه حنزل سمیه. اگر تازه بود کچیک همه. استان سمنان در اطراف نیشابور خود روه اگر تازه بود اینه اوست دقاچ کنن این دوتا پلاشی بزن زمین خدا رو تختش نشسته یا رو سندلی جرابش در بیاره تخت فنری های کف پاشو بذاره این لپای هندوانه هنزم بیس دقیقه باشه 15 واحد کمیش اگر دو ساعت باشه درست قمدخونش نست میشه مثلا اگر 300 سده میشه سد حال اگر فصلی که هندوانه هنزل نیست خوش شده شد پود کنم تیل لگنای کوچیک نگهداری داری میخواد بره سر کار صبح قبلن که بره از سر کار اومد داره استراحت میکنه اینها همجور تلویزون نگاه میکنه کتاب میخونه روزنامه میخونه این کف پاشه یک کم مرتوب با آب کنه فکرش بزاد ت این پودر هندوانه حنزن همین دو سه ساعتی که داره مطالعه میکنه تلویزیون کنه فیلم سینما نمیکنه حاجا بنده خونش نسوشه میشه. حتماً اینا هم دعاشه به جن امام رضا علیه السلام کنن چند تا مریض بودن چند تا بیماری داشتن حضرت فرمودن این کف پا بزاد خوب میشین خب یکی بحث دیابت دارم مرض سکر یعنی بیماری قند میخواد میگم اینا قلبی شرقی ها کشمه کرده. تو روایات ما یکی دیگه فشارخون. وقت دم با سالزاد غین ته دسته. وقت دم یعنی فشارخون. یکی دیگه الحما حجیمی میم الف مقصور. یعنی تب. اگر کسی تب شدید داره چه بچهش چه خودش بخواد تشنج نگیره. اینجا یک قاشق پلوخوری پودر حنا بریز تو علبکی بعد روش سرکه انگور عسکری یا سرکه سیب طبیعی بریزه شما درست تخت تخته کف پا به چشم بعد 20 دقیقه تبش میاد پایین همین بیش... حنایی که خالص بله بله, بله، استفاده میکنن رنگ های ثابت طبیعی این مواد طبیعی شریدن برای اینکه تشنج نگیرن حتی خوردنی ها مثل آب سیب تازه 12 فایده داره هم تبو کاهش میده حتی تبهای ویروسی یک آنتی بیوتیک و چرخه خاصانه طبیعی دوم اگر کسی فشار خونش بالاست 16 18 22 اینا خب بعد پارگی پارهگی مغز بشه و سکته مغزی به نوع خاص کنه 4 مدل از چشم و از بینی از گوش از دهنش خون بزن. چیکار کنیم فشار خونش بیاد پایین صبر صبرزد حالا یا میگن آلو اهورا سمیه نخورن صبر زرد یک آشه پلو خوری میریزه تو نهال بعد روش سرکه طبیعی اینا میزه هم میدنه زمادشون میچسمونه کف پا بیشتقی باشه فشاخون یاد پایی دیگه نمیخواد کپسولای زرد بخوره ضد فشاخون یک قرصای قرمز رنگ زیر زبونی بذاره چون که از عوارض این قرصا چیه؟ یکیش آریتمی قلب نامنظمی زربان قلبه یکی هم پوسیدگی جدار داخل کلیه است. کم کم اوره و کراتینش دفت نمیشه. چون گلومورول های هشلو به کلیه شروع میکنم به پوسیدن. اولیش هم که سؤال شما بزرگوار بود از بینندهای های از این بحث دیابت بود. بخوام خونم و کاهش بدم نسکنم. بدون اینکه چیزی بخورم. حالا اگه سر کار میخواد بره معمولیت داره سرویس مدرسه دیر شد بچه است مثلا؟ یا مثلا دیابت حاملگی داره اینجا پودره هندوانه هنزر رو این چسبایی هایی هست نواری کناره کتاب رو می بله. پهنه این چسب نواریه میذاره ویده یه دستمان کار میذاره یه قشب پلوخوری پودره هندوانه هنزر روش میریزه کف پاش قسمت تخت فنریان میذاره از بالای پاش این چسب رو میبنده حالا جراوشه بپشه بره سر کار بعد از چه آسان قندش نس شد به امی رواتی پودر هندووانه بله بله بعد. متشکرم برخی از بینندگانمون پرسشی رو مطرح کردن مبنی بر کاهش میزان استرس، وضع یا بیماری بیماری‌های عصبی دارن، آستانه تحملشون پایینه و وجود عصبانی میشن، خلقشون تنگ میشه و یا اینکه خب یک جوری بیقراری دارن حت. چه داروی گیاهی مفید هست که این عزیزان استفاده حت. بکنن تا انشالله این موزن رفت شد بزرگوارایی که بی زیاده سعی کنن همیشه صبحانه بخورن و بهترین صبحانه شون شیر اصل یه روز دیگه شیر خورما یه روز دیگه حلیم گوشته. خود صبحانه نخوردن ها بین دوازده تا پونزده بیماری میاره یکیش بیحوسلگیه. و همچین روزهای مستحبی اگر میگیرن حتما سحری بخورن. مستحب معکده. آدم سحری بخوره یا صبحانشه صبح زود بخوره. مستحب معکده. تو روایاتشیه. دوم اینکه که ضریب توکل بر خداشون. یعنی یگانه اعتماد و تکیهگاهشون خداست. که خالقشونه، وازقشونه، رب العربابه، قادران الله کل ایه، تکیه به خدا کنن، تکیه به قرب و شرق نکنن. اگه قرب و شرق عرضه داشتن، خویشونه نگرمه داشتن. اونها ما خواهد میگن ماره نگردن، به این و اون دلشونو خوش نکنن. ترکلشون به خدا باشه. توسلشون به چهاره معصوم باشه. این دوتا زکت درمانه بود. تو خوراکیا ها اگر بخوان اعصابشون تقویت بشه و تقویت قلب اینجا گلاب طبیعی مثلا قمسر کاشان مثلا. به اضافی بیدمشک بازم عرق بیدمشکشون طبیعی باشه نسبت مساوی نصف استکان نصف استکان بعد یک قاشق پلوخوری ها جبا اصل گرم آبیشان نعنا توش هم بزار حسابی ریلکس میشه به قول امروزی ها آرامش بخش قوی احصاره. بسیار بسیاره. آره همه سنین هم خوبه. بیماری خونی در بانوان بیشتر شایع هست. اگه امکان داره خواهش میکنم به راجع به این مهم هم صحبتی بشه. کم خونی در بانوان شایعه، به خاطر چهار خصوصیتی که در این بزرگوارا هست. در مردان و پسران، و فامیلای مردشون نیست. به لفظم بد میشه. خواهش میکنه. یکی حضرت خانومای بالغه ی عادت ماهیانه دارن و هر بیسه هشت روز یک بار هفتاد الی هشتاد سیسی خون کردن دوم ازدواج قانونی شرعی کردن دوران حاملگی دارن سوم دوران شیردهی به فرزند نوزاد و بچه شیرخالشون دارن چهارم سن نشون پنجه سالگی اگر شیخه باشن غیر سیده شهست سالگی اگر سیده باشن این تازه اگر به صورت پیری شناسنامه ای باشه حتی خانم همیشه جوانان ده ساله حالا ما میگیم جوانان قدیم تا اینکه ناراحت نشه حالا چهارمیشم دوران استگی؟ حالا این چهار تو از خصوصیات ویژه بانوان به خاطر این چهار خصوصیت چند چیز در حضرت خانم ها شایع یکی کم خونی مخصوصا کم خونی به نوع فقر آهن دوم پوکی استخوان یا بیماری استعپروز یکی دیگه هم مؤمن ها کمحاصه لگی استرس یعنی نگرانی مستمع استراب یعنی دل هره دست دلشون میلزه حالا این بزرگوارا اگر کمخونی فقر آهن دارن به جای کبسول آهن قطره آهن و همچنین مؤمن قرص آهن و یا شربت های مکمل, مکمل رژیم قضایی ایرانی مثل ماتریکس یا الگومد آلمانی یا فارماکوپه یو اسپی به جای مال نیچرمید ها؟ برد. به این مودم شده زیاد بعضی دکتر بزرگوارم می نمیست میکنم نم. میگن همون منظور طبیعیش بله بله حالا منظورم که ای... به جای همه اینا به جای همه اینا میخوام فقر آهرم خوب کن چیکار میکنم؟ مخلوط سه شیره شیره خورما شیره انگور شیره توت به نسبت مساوی اینا رو قاطی کنن یک کیلو، یک کیلو، یک کیلو. روزی دو قاشق پلوخوری بخوره هم فشارخون زیر دهش خوب میشه میاد یازد دوازد هم کمخونی فقراهنش خوب میشه هم ریزش موی سرش که به خاطر کمخونی زیاد شده اون خوب میشه هم دردای استخانیش خوب میشه مخصوصا اگر تو سن رشد باشن دردای زانو ناشی از کمخونی هم میگیرن حتی به خاطر کمخونیشون قاعدگیاشون نامنظم میشه و دردای زیرنافی درد پهلو درد مهره آخر کمری هم میگیرن همه اینا خوب میشه تو عرقیات هم هست مثل عرق یونجه اینها اینا هم خون سازه اگر سه میلی گرم ویتامین C در بین غذا مصرف کنه توان بدنش در جذب آهن از این غذایی که خورده ده برابر میشه حالا یک پرتقال شیرین وسط نهار بخورم هر پرتقال شیرین مثلا 100 گرمه خب پرتقال تقریبا بین 47 تا 50 میلی گرم ویتامین C داره حال اگر هم کم خونی داره هم فشاخون کم خونی ربطی به فشار خونش شخص ندارم. میتونه گریب فروت بخوره. یعنی سرخ یعنی دارابی. اون ویتامین C و هم بیشتره. و سعی نهار یکی بخوره. شما ببینید یه 5 میلیگرم ویتامین C چند تست است؟ اصلا 5 میلیگرم بخورم 10 بالا با. 6 میلیگرم ویتامین C 20 بالا با. 9 میلیگرم ویتامین C 30 بالا با. جذب آم از آن متفاوت است بیماری یا یخون. وقتی هم که کپسول آهن یا قرص آهن یا قطر آهن میدن میگن بعدش یا همراش کم آب پرتغال شیرین بخور تا جذب آهن در بدنت قوی بشه و بالا بر بله همطور که عرض کردن پرسش های بیشماری پیش رو داریم و عزیزان بیننده با سامانه پیام کوتاه برنامه 3625 خواهش می‌کنیم فقط مرتبط باشن پیام هاشون رو برمون نرسال بکنن انشالله به تدریج مطرح خواهیم کرد وقت گفتگوی امروز ما خاتمه پیدا کرد از تشریف فرمای یی شما صمیمانه سپاسگزارم تقاضا میکنم در خاتمه فرمایشاتون دعایی بفرمایید و این بخش رو خاتمه بدید اللهم صلی <تصفيق> علی فاطمه و ابیها و بعلها ها و بنی ها و سر المستودع فی ها عدد ما حاط بهی ال شما یک دکلمه اول برنامه فرمونین درباره باره شعادای عزیز خدا همه شهده با شهده کربلا محشور کنه ملت شریف قدر شهده رو تو تروایاتش یه میگه یک شهید قبل از ظهور امام زمان فضیلتش بالاتر از اینه که انسان پنجا فرزند پسر تربیت کنه همه در رکاب امام زمان باشن با دشمنا بجنگن فضیلت یک شهید قبل از ظهور این روایات رو زینادین العاملی تو کتاب مسکن الفعاد فی فضل الاحبت و الاولاد روایات آورده حتی فضیلت شهده قبل از ظهور امام زمان از فضیلت شهده بد رو احد بالاتره اینا تو روایات داره پس اگر کسی اصول ازش یا رعایت کرد پاست داشته شهیده بزرگ داشته شهیده رعایت کرد خودش عوج میگیره شهیده محتاج ما نیستن ما محتاجم شهده عزیزی خدای شهدای عزیز را با شهدای کربلا محشور کن الهیم. هموات مؤمنی مؤمنات را ببخش و بیاموز نسل ما و خود ما را زره طیبه قرار بده الهیم. تیدگان و قلوب ما را به جمال و قلب نورانی مولا سام زمان منبر بگردان الهیم. همه مریض های اسلام را و همه امراض را از فامیل غیر فامیل همکار غیر همکار از همه بدر طرف بگردم همه با شفای کامل زندگی سالم مستمر با لب خندون باشن هاج جان اللهم صلي على محمد و آل محمد, محمد. حاج پیر تشکر میکنم مجددا از تشریف فرمایی حضرتادی ان شاء توفیقی باشه هفته آتی باز هم در محضر استاد حکیم دانشمند جناب حاج آقای خواهیم بود و خب دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو ملاحظه